شتر مرغنویسنده اباس مرادیان بازیگران امیرحسین رستمی در نقش ایرج هومن برقنورد تورج فریبا نادرین نگار شبنم فرشادجو نقمه مجید واشقانی امین عباس جمشیدی خوشی علی سلیمانی احتشام عزتالله مهراوران کاغذی شیمان نیکبور آلاله حروق قجابگلی خالقندی یوسف قربانی دلخون. بازیگران خردسال محمد رضا شیرخانلو، امیر رزوان گلی دختر همسایه موسیقی رضا خسروی تهیه کننده جمال گلی کارگردان علی اسداللهی ونی یا کلافه تو اتاق پسرش روی تخت سا در حال مرتب کردن وسایل کوله پشتیشه. قربون برم تو دیگه این بابات نباش. آدم خوبه سر صوبی بره دنبال کار زندگیش. من گنگه کار زندگی ندارم. اینو بعد تا کردی. داری مادر در روز دیگه امتنا چرو میشه؟ این اردو رو برید دیگه همه چه حله. این وقت من برم اردو دست بخونم شما برید پارک کباب بخورید ها؟ با من بحث نکن. تو هم میخوای مثل بابات بشی؟ تمبل بیار بیکار. مس فاطمه تو گوشام تو این جیب جلو سه بار میزنی سوب زور بعد ازور شاب ای hey, بابا یه روز جمعه هم نمیذاریم بخوابیم مامان هیچ وقت نمیذاره بخوابیم پدر وارت میشه مثل اینکه لازمه به شما دوتا یه خونه تکونی اول صبحی بدم آره پدر و پسر از تهدید مادر هر دو دماغ میشن صبح روز جمعه پارک نمای از چند درخت بیبر و حوزی که پر از ماهی قرمز دو با جناق شالو کورا کرده کنار یکی از تو موشم و زغال میرزه و اون یکی جن آتش زاد مادرهای خدا دره این دیب تنگه می کشن شاکیش شاکیش چه خوبه الان تنگ غروبه چیزی به شب نمونده به تاب و تب نمونده ریتتا دیدم ریتتا دیدم ریتتا دیدم شروعه را چیه تاب, تاب شب کدومه تنگ غروب چیه جوجه ها را آماده کن الان میگم این هم نهره می کشن خودو ای خودو یعنی میشه یه گل از این آکیش آی بیوفته تو دل این مادرای فولادزره یه زل دلشون گنگ شه میشه میشه سنشون دورتر راه میرن و گپ میزنن تو هم شهر زو مثلا یکی من این واسه خب این تو با پس ما اساتید و بگن دوران دانشگاه من گفت چقد زر بولم حلوا یاد بودم خودم دانشگاه تو یه تم رفتم میکروبیولوژی خوندید دیگه منم گفت میشنون تو هم یه تم با تخصصی پاس کردم بعد دانشجو دانشجو ناخیر این دو تا ما جوجی کباب درست کن نیستا آره ما تو که همه این ماجرا برعکس بادی بیفته دست ما مردا اویو قراره دارن پس خبر نداری انا همشون دارن رئیس میشن یه روز زن ها سو آلمان دوباره صدر اعظم شدن راست میگی بله آدم مدیریت مدیریتو میده دست زن دایی بابا رو یادته چی جوجه کبابای واسمون درستون کردن جوجه مردم بود مردای قدیم اونا جوجه های ما ها؟ نیستن؟ جوجه همون رفته اردوی آمود بشید چه میدونم؟ فیکنیک شوید وای گربه رو میگه شر رو میگن آه همه ای خدا بگم چی کنه الان میزنم این انگاشت هم این و اون انگاشت میشکنم خیال خودم راحت میتونم گربه پیشه پیشت پیشت پیشت مردم میدونم میرن حالا چی کود آهان میگم جوجه میخرم برمیگردم بر برمیگردم من نمیدونم شما دوتا که نمیتونین از جوجه آماده نگهداری کنین چجوری میتونین مرین جوجه آماده پیدا کنین بردارین بیارین وای به حالتون نگارسونین کجا بهم گوشت آماده جوجه پیدا کنم از مختاری بابا <متصفيق> من دیگه جوجه نمیخوام <متصفيق> پس خدا رو شکر دیگه میری تا نیم ساعت دیگه گوشت <متصفيق> ما <متصف> پیدا میکنین برمیدارین میارین من میرم بهترین موقع تراب پیدا میکنم میگم این جوجه خرد کن آماده کنه برمیدارم میارم مرغ همان نه هر گوشت شطور مرغ. بله شاتور مرغ اون قفسه کبابیشه. بریم تا نیم ساعت دیگه ام اینجا باشی. شاتور مرغ. بریم بریم بریم. کجا بریم؟ همچی میگی بریم بریم؟ آقا محل تجمع شاتور مرغ رو میدونی کجاست؟ و میگین نیم ساعت دیگه اینجا باشین. خدا دادا باشا الله. گوشت خوشمزه ها؟ ای ولدی. خیابون. مردا با ماشینشون دارن میرن که گوشت شاتور مرغ پیدا کنن. می تو راه چک هواس دو جمع کنی من که داشتم آکیس تورش می‌گردم تو چرا هواس دو جام نکردی از لگین دکتر از جی ها ماشین در زد چه حقی داره گردش مردی بعد این صباگه سر تو که شاهده بودی دیگه نگا جو چرا خواستگار حکومت داره این زن تو پارک روی زیراندوز نشستن رو در حالی می تو بدید من به چی را گفتم بله ام. روز اول که دیدم از کفتم این مارمولکیه بعد دیدم اینه اون تمسا پوست کلوپ ده بوش به ماخ که پیدا میشه حالا باید بگم این انهای شتارش را پیدا کنیم هم گفتم خدا یا خور از خدا چی میخواد تا جسم بینا ما شانس نهن بودیم. بافت واقعا گفتم که وقتی اون طفلامو هرمنی گافول، بله. داری من که من میدونم اسم اسمشو نمیاره. میفهمه میفهمه این کی لازمش فرخه؟ خدا بگم چیکارش نکن که دست این رفیقشو گرفت. آباد اینو گرفت دست من. با نگول. تو دورش هم گفتم بریم، این گلهشو دار مرغ کجاست بریم؟ چطوریشو پیدا کنیم؟ کجا کنیم؟ حساب کنیم. کیاش زندگی؟ خیلی داری ناله میکنی آینه شوهر و معنینی برده ما کار میکنم. واقعا بی‌انصاف نگاه. اوف این زندگی. چرا کو کو چشتو کیشو بابا رو مغازه فروشی زن فروشندی چاخ در حال خوردن چایی و بمردی که انگار فامیلشو حرف میزنه میگه گوشت شطور بخورن حالا شطور چیه شطور مرده والا گوشتش رو خیلی خوبه گرمه گوشتش سیاتیک که خوب میکنه نقرس خوب میکنه روماتیس رو درمون میکنه این چی کار میکنه بابا این بنده خودو هم به نوبه خودش 760 نو مریضی رو درست درمون میکنه یکیشو بگو ببینم یکیشو خب الان به دلیل زیغه وقت از ارائه توضیحات اضافه معذورین و توی حوصله این برنامه نمیگنجد چند کیلو بود؟ چارانی. مااموره به بیام بیام واسه این گوشتا ومره تایید گیر بدم من همه چی رو گردن تو بهت بگم آقا ازن از کردن گردن من خوبه خاله اینا رو بفروش بابا اینطوری ما به جامعهمونم تونستیم خدمت کنیم با گوشت شوتر مرغ باحال شد خاله قندیه عزیز خواهشتم طبعا خدا به همراه مرت میره ای خدا یه عقل درست حسابی به این بچه بده داره زندگیشو به کل شده قصاب شوتر نه میشه آقا برای ما بفرست گوشتمون رو بفروشین خلاص چه بریم سر خود زندگی سلام خسنم بشی خوب سین خانم گوش شتر مرغ دارین سنشاخ مترجم خوشحال به همکارش نگاه میکنه بله آقا داری داری, داری. لطف میکنید این صدای توراج که از تو ماشین میگه میگم ندونی جاره اسمم عوض میکنم اگه این دوزا پپه گوشگی رو بده باشه نگار و نقمه در حال جمع کردن می به حال گوشاله گوشته بکنم به ما تلک زدیم کی گوشته تورک نقمه اینو بردوی شده میکنی دارن خوشحال به گوشته شدرمو میان شدرمو رو به احلا تحبید بگیریم رو <تصفح> به ما خالب میکنی فکر میکنی ما بلد من این گوشت رو میپذزم اگر گوشت بود چطور مغناه بود نبود فایض مال من دختر جون آقای رش نمردی و صبانیت ایرش خب رو با باد بزن با تیزگوش نم شد کاش کی دو تا سیکان برای خودمون میذاشی کارت در توی سیکان هم باذب من صبانیم دیگه اه صبانیم تو از امروز بود با صفحه کنون خیلیه صفحه کنون به شما که خدا رو شک خوب گوش خواره. اگه گوشه شطور مغ نبود من تاوانش رو میدم به جان دورش بفهم آرامش شیراز آرامش, آرامش. آرامش. دوم در آوردی پسر محمدونوا با. حالا بالاخره میریم خونه دیگه نشونت میدم اتفاقا منم هم میخواستم همینجا اعلام کنم منم دیگه بایجاب... به ایجاب ای از بشار تو به ایجاب رسوم خسته شدم خسته شدی خسته شدی بخو بخو نگار نگار میخوره نقمه میخوره نه اینگر خوششون اومده به نفکر خوششو تو مرگو شانس آوردیم نگار و نقبه در این حال که با لذت کبابار قورت میدن قیافه های عصابانیشون کم کم آروم و دلنشین نشین میشه شده. بیره چرا نکنم واقعا بیره چه خونه؟ بیره تو دچ خوش زده نغمه و نگاه هر دو روی خوش و متبسل به شوهراشون نگاه میکنن وای تاله اینطوری نبودن چی شد؟ روز مزرعه پرورش شطر مرق چند تو شطر پشت توره سیمی با ناز و عدر را میرن روی تنه درخت دو تو مرد نشستن یکیشون همونی که تو مغازه مرغ فروشی بود امین فایده نداره اول بخون بعد دو فایده نداره بابا خوندم دیگه اینه دفعه قبل هی برمیداری آب مغتر میزنی به این شطر مرقا. من میگم اینا اینه خر میمونم ایش که اینا رو نمیخره گوش نمیدی دیگه. ساب کن اوه ساب اوکی ساب تو اوکی فردا نه پس بعدو من و شما میمونیم عموت تشریف میاره با لگد میندازم اون کف خیابون تو سیاه زمستون اوه من میخوام ببینم چی میکنی اینجا ارث بابای منه بابا ارث ارث نکن هوشی عموت اگه سدنگشو بفروشه شما اگه اینجا هم بمونی کاری از دستت بر نمیاد ببین ببینین برای تو زنبشو نمیشه ها برای چی دخالت میکنی من پسر میگم پت از زندگی این بکش بیرو خالت نکن شما اگه پسر همون بیا مشکلات این ملک رو حل کن ما بدونیم تکریف همون چیه همون به خب چیه با یه لحنه خیلی بد پیامک داری گفته پاشو بیا اینجا لحنش رو اک کجا دیدی؟ آن میشناستم اشتیگه خب اگه لحنش بده برا اطمان خودو تو نمی من میام چیکار با شما کار داره عزیز ما شاید آلاله اونجا باشه. با این حرف اونم اگه من یه چیزی میگم خیر و صلاح تو میخوام اموت هم غریبه که نیست اتفاقا نمو جان یه جای یک مطلوی خوندم توش نوشته بود هر کس میخواد یکی دیگر رو گول بزنه میگه خیر و صلاح تو میخوام البته این وقت به خودتون نگیری نه تو فکر میکنی من نمیتونستم اون مزرعه از تو دست در بیارم؟ موقع علف الف بچه اونم برادر زاده من میخواد جلو کاغذی قد علم در الان همگه سر پایستادی به خاطر اینه که خودم زیر پروبار تو گرفتم که را دادی خب اصل صندلی رو میکش میشین یه ما یه ما چی؟ یه ما بهت مهلت میدم که این مظه رو به سدهی برسونی و گرنه خودم مظع رو با هرچی که توش از و هرکس میفروشم باری کلا من حالا نظرم اینه که اگه ما بهتون نیمیذاری بشیله هر دو بلندشان می ایستن خلده باید زمو جم خلده اما نگاه آقلن در صفیه بهشون می و اونام می از درب ساختمون میان بیرون فکر می خواهیم من از این مزرعه بزیار ولی کن من سر یک ماه اینجا رو به سود دایی می رسیم اوه هوا <تص> افراد چجوری؟ برو <تصفيق> من نکن. یه حالا خوب سراغ دارم چی اصل اینو؟ یه شیک شیک‌پوشی که از ماشین شاسی بلند قرمزی بیرون میاد اشاره میکنه. تو نمیخوای بیخیال بشی؟ بی چی؟ تو بی خیال شوتر میشی؟ هر وقت فرق اینو با شوتر مورگ و فامیلی چی؟ هر کاری دوستشی بکن. دختر در ماشین میبنده و با اون نزدیک میشه. سلام. سلام،, سلام. خوبی؟ آره، بله؟ سلامم کاغذی. حالت خوبه؟ خسته نباشید سلام بعدا میبینم از تو دختر میره صبح نمایه سنگی چند طبقه آپارتمان ایرج و تورج تورش تنها روی تخت راست کشیده و تو فکره حالا در دستشوی رو باز میکنه و با حاله صورتش رو خشک میکنه در کمود رو باز میکنه و لابلای لباساشو میگرده اما لباسی رو که میخواد تیدا نمیکنه از تو کموت میاد بیرون که یهو تو توتا نمایی کودش رو میبینم میشه این کار یکی پشتشه بله این زن میشه که با خوشرویا و محبت به کودش عطر میزنه اونو گرفته که آقا بپوشه پوشه بیا آقا تورج کن بینات هر با قرور و افتخار میره آفیت یه اتنا یه دونه گوشپاکم برمیدار و میره زن به دنبالش مرد یه دست کاغذی میکنه ایره من خطایی کردم از خره بازی دهن نه یه بسته دیگه نقمه مایوس و نارا حسینی رو روی میز بذار و میره گفتمایدم <تصفيق> <تصفيق> من تو سرم خورد میکنم ایرش متحجب به طرف میز میره صبح اتاق خواب امیرالی امیرالی ماما نمیخوای بری مدرسه پسرم چه میشه ما منادم یه رو نره خب از درستا تقرب میفتی عزیزم یک چند دیگه میخونده خب باشه امیرالی با تحجب پتوش رو پس میزنه و میگه واحن اداره تو رج حراسان وارده اتاق میشو به ایرش که پشت میز نشسته میگه من دارم دیوونه میشم دارم دیوونه میشم ببین یا آسمون اومده زمین یا زمین دفت آسمون چی شده؟ امروز شیشه صبح نگار کت به دست همیشو بسته این کمسر جناب آلی کت گرفته دم دربایی ساده این خیلی چیز عجیبیه بله خیلی عجیبه ده سال این کارو نکرده خب عزیزم مشکل خواهد کم جنم داشته باش بابا چرا متوجه نیستی امروز کله سحر چجاو خوابالو علی قول نمی‌ش برم کد به دست نمیدن گفتین دستو بکن تو اینو خاصین این دستو بکو ماشي یعنی تورج واقعا بابت این قضیه تو در اتاق من کندی اومدی تو بابا چرا نمیفهمی چرا متوجه نیستی من میگم نگار حالش خوب نیست مریضه مریض شده بازیه تورش بازی این دو تا خواهر ادینوس که سر قضیه شما کردین دارن بازی دارن که شب ما رو تنبیه کنن نخ بله نقمم؟ نقمم؟ بله فکر میکنه من نادو آپورتغال گرده اینطور این واسبه باشه نرقمون تو چی کردی؟ کردی؟ وعدم زیرش گفتم با ما بینیم بابا راست میگی؟ گفتم من آپورتغال نمیخورم اونم حرکت رفت تو اتاقش انقدر ما جنهای اینا کوتا اومده که یه بار وقتی محکم گرهشون واهی میسیم میخواند ترمیه گریه استفاده کنن راست میگی، راست فقط کاملا من باید با هم هماهنگ باشی با هماهنگی هم اینجوریه بابا خیازه چرا؟ من قول شرف میدم بدون اجازه تو هیچ کاری بله بله که واقعا از همی که در از هر موقعی که میگی یالا تو این چارستون بده من گیرنده. سنوی از مزرعه. گوشی آب مقطر رو داخل شیشه آزمایشگاه میریزه. تیر خونام کرده بعد که با خدا بیامونزد بابا اگر زنده بود یه دوم هم میزد کشت شد کلت میگو بروب دنبال زندگیت دایی جم کجا باید کنم برم اینجا تقوی زندگی منه دایی منم پر همیته شطرمو که تخم نمیداره شطرمو نیست شطره باید کشت کشتشه بدیم با خرق الله دایی جم منم دارم همین کارو میکنم دیگه ولی خب یه جورای خورد خورد چشم تخ میکنن شما نگران نباشید تا بیان نه تا بزره نتیجه منم دنیا اومده صد بار که بهت گفتم عمو ها رو آورده اینا اقام شدن ده جون عموی من این کارو نکرده شما مطمئن باشید از ما گفتم این عمو اگر از دستش بر بیاد تمام ها رو آتش می خونه امین امین توش آشپزخونه مشغول چیدن میز با گوشی نشسته که آبا ما روی تخت نشستم آورده اتفاقا منم تو همیشه هم حالا هرچی به من خیانت بخشید شما با بقیه چه فرقی داری؟ نه ت با عقد من رو تو اصل رو نبستم. بشم من فقط میم که اون یه جورایی خیلی با معرفت همین. منم از همینش خوشم میید. بیام کاش یه ز از اون نمونه دونه ها داشتیم. مایتابی تخم ماغ رو میشهه آقا از صبح سر ما رو درد وردی. این به چه دردی میخوره حالا؟ نمی ولی فکر می این دونه ها تو اغم شدن این حیول بی تاثیر نیست. جدا؟ ره ببینم رو آدم که اثر نداره. چرا تاثیر داره؟کی خوردی؟ آ یا خوردی یه موش <تصفيق> مرد ها خوا... شب خونی تورج بیش... تورج در رو باز میکنه وارد میشه؟ این صدای زنشی که داره به یه دختر توپل مخل با مزید 15 16 ساله دیکته دیگه روی میز پر از شمایی کوچیک روشنه ها. من معذرت برات که به خاطر آسایش رو آرامشم تا این وقتش رو کار میکنی گولم تورش به عقب برمیگرده یعنی با منی؟ با منی؟ بله خب گولم آلی شما خوبه؟ به وقت این خانوم کی باشم؟ من دختر همساییم گلم حال شما اینجا چیکار میکنن؟ شما همیشه اینقدر سوال میکنین گلم گلم تا شما کفش در بیاری؟ من دارم یه لگن آب داغ بیارم که خستگی پاها در بیاد گلم تورج به زور آب دهنش قورت میده و به دختر میگه وف شما خونه زندگی ندارین گلم دارم گلم من نیستم اشکالی داره گلم نه خوب ده داره گلم خونه ایرج شد ایرچ در رو باز میکنه و در حالی که حاج و واج به فرش خیره میشه میاد تو در رو میبنده روی زمین پر از گلای سفید و کنارشون در دو طرف فرش باریک شمای زیادی روشنه و بالاخره بلاخره خانومشو میبینه که لباس سنتی ای پوشیده و بی منتظر ورودشه زن لبخن میزن و ایرش طوری نگاش میکنه که یعنی این ای ای واقعا توی خدای من شب در حیات خونه امون هوشی که قدگو و با مز و اینکی کتکلای نارنجی پوشیده و امین کتکلای چرمه مشکی کله هاشون رو سرشون میزنن کلیت داری؟ جنگه حلوکی خیلات نمی که این رسمند بابا عمویم من وقتی رفت سفر یه دونه کلید ساخت به من داد. براش هم دیگه یادش افت از من بگیره. من دیگه بهشون نرسیدم. خب این دزدیه دیگه. اسما اومدیم چه غلطی بکنم؟ این دزدیه. برو تو. اما این دزدیه ها. برو داخل. achaو میپاد. مثل دوستا رفتار می کنن. داخل حیات میشه. حواشی اطرافو یه نگاهی میندازه و اونم میاد تو. اوه. ماشین شمستی بلندی قیرمزه آلاله خانم تو حیات پارک. یا امین میان به طرف ماشین. و اینجا که جان نیست. بخواد یه چرا قاوه می آورد اینجا که چشششو نمیبینه. بخواد چراغ قاوه بردین بیاریم روشدش میکنیم بیدار میشن. اگه نمیگی اینجا هیچ نیست. آقا سرای دار که داره. صندلی سمت راننده رو هول میده به طرف عقب. اون زیر دنبال چیزی چیزی میگردد. پیدا میکنه. صندلی رو به حالت اول میکردن و در ماشین رو میبنده. کافیه. آقا رو بگو بریم علی خونه ایراد خوشمزه شده ایرش غذا میخور و نقمه ما محبت میگاش میکنه وقتی داشتن درست میکردم خیلی استرس داشتم که میتونم راضی کنم یا نه میتونم میتونم <تصفح> امروز همش از خدا میخواستم که بتونم همیشه تو رو راضی نگه دارم. هیچ وقت نرنجونم تیرنج هیچ وقت خب کسی انم درست مهربون شدی کسی نه چی از من میخوای؟ حرف فاکر تو اول بزن دیگه. من فقط سلامتی تو میخوام با خدایا نکنه همین الان هم رنج میاد. تو دیوونه شدی یا فکر میکنی من دیوونه؟ ایراد دیگه کار نمیشه. نه خب میکشه میکشه آغابو به حالت قهر میذاره میره خب میره کنار پسرش که رو تخت درست کشید و با آیپدش بازی میکنه میشینه و از پا فکرش میخوره و لاباز میشوند به میزنن و با همدیگه بازی میکنند. مگه با شما داده تویش؟ نه مامان. بابا تر دست من ناراحته به نظرت من کار بدی کردم. نه ولی الان که داری یوازو من برد میکنی آره دیگه ببخشید خواه نوگره تن بیایی بازی؟ یعنی درست نخونی؟ آره دیگه یعنی درست نخونم همه؟ <تصفح> هموشم تورش یووشکی موبایل به دست میو تو اتاق در اتاق بازه سلام بوزو چطوره؟ بقاله؟ ببین من میگم اگه همینو هیچ وقت از خواب بیدار نشد شدی؟ در حاکی دیوان شیر اصل بزرگی رو هم نزنه با لبخم بیاتی کار دارم. بعد تو صبح, صبح زود تو خوابه میچ سدای تنظیم شده تورج بیدار میشه با ترجب به ضبط صد نگاه میکنه گیهو میگاره خوشرو با سینه سوفاله میاد تو کنارش روی تخت میشینه سانو تقمر آخه چایش رو بخورین شیرینه چای می رو میده تورج میخواد حالا لغمه کره پنیر تورش با لذت لغمه رو میخوره مربا چشم آقا چشم. حالا لغمه کره مربا اونم هم میخوره همراه بچه ای شیرگرمه؟ بله دوست نهارم زد اوی نگاه چنان لیبان شیرو فوت میکنه که بطرف میپاشه با انگوشش امتحام میکنه بلی خونک شده تارف میکنه تورج ناز میکنه و شیرو نمیخوره میذاره کنار چایشو هرد میکشه میز سپانه مفصل نقمه نشسته و ایره ایستاده تون دو تون میخوره ایرج میره نقمه منظورش آب میبهز. میده است. میگه به ایرج ده ده در به دیوار تکیه داده و با لذت نگاش میکنه که یه حالش به هم میخوره و <تصفيق> ایرش فرم ایمانه که چی شد سدش میزنه این سده در زدنی تورجه نقمه <تصفح> نگار نکنه دارم بابا میشم نقمه زم حالا <تصفح> ایرش حالا تورج نگار بابا من نگرانم در رو بکن نگار نقمه زم نگار نقمه نقمه نقمه و بلخواه ایرش خوبی <تصفح> یه بابای نشونت بدم که زهتا محصف دک ازوش در بیاد اوه با قلت نکنم درمونه دو برای خوالش خوب شد به دست میاد بیرون و اونو میکوبه تو <تصفيق> سیره ایرنج که در دستگیری آپارتمانو به زور نگه تاشته نتونه زنش دارو باز کنه یه لحظه معکس میکنه از تو توچشمی نگاه میکنه من بهت گفته بودم اینا دارم بازی در میارن تو رج نگفته بودم اداره من بهت گفته بودم اینا یه ریگی توششونه. تو تو نگفته بودم؟, بودم من گفته بودم من گفته بودی ای بابا حالا این ندونم کاری ما رو بکن تو سرم اونا. من نمیگی دو روز این نگار نازنین من حالش خوبه سر کیفی گفتم مام میگه یه کیفی بکنیم ببین ایرج این روزا دیگه بر نمیگرده ها تکرار نمیشه من ساده رو بگو فکر کردم یه قپی رو نغمون بدم جواب بده همش کوبیت تو سرم اون بعد نزنه خیلی بخیلی دستش سنگینه اینا بعد چیز خور شده باشن یه چیزی خوردن که اینا رو متحول کرده یعنی قرسی مرسی یهالله یه قرصی یا یه چیز تو همین مایا تو چیزی به نگار ندی بخوره؟ نه نگار خودش همه چی میخوره نقمم همه چی میخوره؟ خوهر دیگه ولی باید چیزی بوده باشه ببین من یه فیلم دیدم یه پشه یکی رو میزنه برو چاید یکی دیگه هم بزن دوتا رو زن ولی اینا تبدیل به دراکولا میشن وحشی ها پشه اگه این دوتا خوهره بزنه خود پشه میشه هر چیزی که هست از روز پارکی یادته مالی تخمه آفتابگردون ها نه نه من روز نیم کلو تخمه آفتابگردون میخوره روز نیم کلو تخمه جاپانی منم خوردم اینا یه چیزی خوردن که من نخوردن ایراج یادش میاد کبا روز پارک راست میگی راست میگی هرچی هم که میخوردن نیده دی یه جوری میشد کباباشو تو زمانی که ما نخوردیم فقط نگاه کردیم چرا ما نخوردیم چون ما عصبی بودیم عصبانی بودیم از دستشون بعدین تحت این نظر دربیایید که از کبابش تومر بوده که اینو متحول شدن مهربون شدن آروم شدن یا نه ما تصوورمون اینه که اونا مهربون و آروم شدن بابا چه تصوری یادت رفته شام گل عرق بیدمش ها پرتقال کود چقدر اتفاقی بوده باشه اصلا میگم آقا اتفاقو اتفاق خوبی بوده دیگه اتفاق خوبی بودم نما آقا دو روزم دنیا به کام ما دم شطور مرغ گرم ګر خو سره هر روز دنیا به کام ما نګرده همو شوتور مرغه میگیریم تا ناراحت شدن ناتوانی شدن میبینیم میخوان نروبون میشن ماشین نیستن و آدمن رو برای همین روزا گذاشتن من برم کجا تو ساعت من خسارتی بگیرم برم تحتین شوتور مرغه رو در بیارم ایرج با دست میزنه رو میز میره تورش میره تو, می تو فتر ما گلزی نمیواد فروشی. ایرج از همون زنه چاخ گوشت شطور مرده میخره و میاد بیرون. <تصفيق> خونه ی ایرج. ایرج رو میبنده و میاد تو صدا میزنه. بعدمه. بعدمه. بعدمه. همه جورو میگرده. خوشحالی که نقمه نیست میره توش خونه مشامای گوشت شطور مرغ و با کیف ادارش میذاره روی میز از روی گاز در مایتابر بر میداره یه سوپ رقیق توشه خوشحال میشه در رو میذاره گوشت رو با احتیاط روی تخته تند توند خورد میکنه آقا یکی از انگشتش باند بیچیه. میدونین که کار کیه نقمه خانوم از روی تخت میرزه تو مایتابه و درشو رو میذاره کتوکیفش رو بر می و میره تو اتاق و حالا مایتابه روی گاز بگنه از کنار بالای مایتابه دود قدیز سفید جادویی فضا رو پر میکنه ایرج با دستگان سرخ زیبا وارد خونه میشه و با احتیاط اطراف نگاه میکنه ببه غذا گازه. هست ظرفا تو سبت شسته شده از لبخند میزنه. ساعت هشت و نیمه خانمش آبی پوش و مرتب میاد به استقبالشو میگه سلام سلام ای هر دو با محبت به هم نگاه میکنن ایرج قابلمه به دست پشت در خونه یه تورج وی وی این سری میگاره تورش میاد بیرون قابلمه هم میزنم تو کف پارکت تورج اینو فوری بده بخوره خوب میشه چی هست مادر نغمه خورد جواب داد یعنی راز خوش اخلاقیشون تو اینه خودم هم بخورم نمیبینم سری بده بخوره ساکت شه اگه تاثیر نداشت من اینجا بایستادم بالا نمیرم باشه. برو برو بده بخوره باشی تورش میره تو و در رو میبنده ایرش میمونه و گوشبایی میسه نه خیر بازم صده نگاره تورش در رو باز میکنه در حالی که حوله رو سرش رو گوشبا کن به دست شدی؟ تو تورت جواب داد؟ معلوم نیست؟ براه. اگه جواب نمیداد که من لباس راحتی تنم نبود خب تورت گوشت شطرمان جواب داد ببین ولی فکر نکنم و من امروز گوشت شطرمان خریدم دادم خورد افاقه نکرد کلی کتکم زد این این کبابی که تو آوردی حالشو خوب کرد ببین خوب خوب بله فهمیدم اونا. ما باید یه نهایی بکنی احتشام احتشام اداره تورج و ایرش روی صندلی نشستن منتظر تورج بیقراره و پاها و دستاشو هیت کم میده خانموشه عصبی شده و به تورج نگاه تندی میکنه رضایی خیلی بد نگاه میکنه من میگرم کش کی یه سیخ از این کبابی میدادیم خود خوش اخلاق میشد من که هنوز تست نگرفتیم جواب بده که معلوم نیست روزانه زن من رو تو جواب بده رو کاترین هم جواب میده کاترین کیه؟ اشتون بابا اشتون من میگم اگه این تست تو جواب نده جفتمون اخراجین شک نکن جفتمون اخراجیم بله. باشه چشم بفهم این داخل توی اچخان شما تشک نمیاریم نبیگه گفتم اگه بنابر اخراج شدن باشه یک بون اخراج دفتر آقای احتشام ایرش منتظر نشسته و آقای احتشام داره با زنش تلفنی حرف میزنه چش، چش عزیز. بله بله میگیرم میارم رو چشم رو چشام گوشی تلفنو با اکرا از خودش دور میکنه موبایلش رو با هرس میکوبه روی زمین بدبختی ما رو میبینی عزیزی بدبختی ما رو میبینی من خودم به این بدبختی مبتلام البته بی خود تو گوشمون خوندن زن بلاس اما خدا نکنه هیچ خونه بی بلا بمونه این بلا نیست بدبختی منه این فلاکت منه هرس نخورایتشم راه حل داره رای حل داره. شاعر میفرماید هر بلا که از آسمان آید گر به دیگر کسی روا باشد بر زمین نارسیده این فرصت خانه احتشام کجا باشد من نمی‌دونم خونه مرا کجا گیر برد زودتر شما خونه رو پیدا کردین آیا اهتشم آره کار از مزاحمت بابت رفع همین بدبختی مزاحمتون شدم منظورت زنمه؟ کس دیگه ای هم هست؟ نه زن اومد برای آسایش هم دیگه زن من زیادی آسایش دیگه. حالا آقای احتشام هستین؟ عزیزی احتشام به طرفش خیز بر میده رو ای از ترسش بلند میشه و میره میاد پیش تورش تورش بلند میشه و میگه اخراج شدی؟ آقای احتشام در دفترش رو باز میکنه و میگه چطوری؟ باید سیخ که آقای احتشام حاج و هاج میمونه ایناش که مثلا کارگر و مشمای گشت شطور م دستش پش در خونی احتشام منتظره زن احتشام که چاق بد اخلاقه در باز میکنه گوش و میگیره اون میره تو ایناش تلفنی اطلا می دا نقه کلی فقط بعد نداری زمانی به اگذلت این غذا رو بکنه بعدجر سری بعض من اعلام کنه این از کنار خیابون می طرف ماشینش ببا تو راجان تو ماشینه. ایرش سوار ماشین چون یه نگاه پیروزمندانه بهش میکنه اصلوی در امیراده درمی که رو تختش دراز کشیده و داره با آیپدش بازی میکنه آقایون تو حال نشستن و خانم تو آشبازخانه ظرف تو تورج یواشکی موبایلش رو چک میکنه نگاه تورج نگاه های محبت ها هم میکنن ایراج جان یه مرد پشت داره اجازه میدید من در باز کنم آقا؟ نمیخواد من خودم باز میکنم نقمه قبول میکنه و میره سرخ زف شستن ایراج با ترس و لرس میره که در باز کنه گوشی آیفونو رو بر میداره جانم از تو آیفون تصفیر آقای احتشامو میبینیم که از اولی تند حرف میزنه آیفون رو گوشی رو زنجاش میذاره ایرج در آپارتماله باز میکنه و یه لحظه از حالش لای در گیر میکنه ولی بالاخره در رو میبنده و میره تورش توان منتظره بشه خودش فکر میکنه خدای چی شده یهو نقمه یه نوشیدنی براش میره و بهش طرف میکنه سه روز بعد رستورانی احتشام احتشام پشت پیشخونه و داره با ایراج حرف میزنه اگه جواب داد داد اگه جواب ن جواب من منفیه احتشامجو اون کبابی که همسرت خورد برای سه روز تنظیم شده بود سه روز شفق برابرده من دیگه تمومه زنیت میشه همونی که بود حالا دیگه قریب باش بردبار باش دیگه خودت میخوای دیگه انتخاب خودت ایلش میو طرف ما رو میکش و میشینه بولوفه حالا بولوفه ما بچه سیره زنگ ما بایده احتشامه آخ آخ ایت شم گوشیو از آدش دور میکنم همون طوری باش هف میزنه خانم سلام باید باید چاش چاش چاش من من همه این مسئولیت رو میپذیرم باشه آنچه خود آفس خود ایرج ایرج ایراج ایراج تو 10 درصد افتشم تو واقعا به اون کبابا زمان مندی داده بودی؟ جواب هنه بردیم همون 30 درصد 20 درصد ایراج اخراجت میکنه اما به 20 درصد افتشم امشب کباب داریم بیدیم من ببرم خونه یا نه؟ ها هم امشب کباب داریم خب همه از این برد تو روغن اما میدونم میدونم؟ احدی نباید مطلعه بشه که ما چی میپذیم یه چیز مهمه دیگه هم هست حتی معمور رو بهداشت؟ با... نه. نه باری کردم ببین من باری کرد. دست, دست دیدم به نشانه توافق مرغ فروشی امین میاد تو مشاعی گوشدار رو میذاره رومیز سلام خاله سلام پس کجا بودی؟ بازن زدی اومم دیگه کجاستین س نقا؟ یه کبابی داره گوش میخواد هر چی گوشت شوتمرغ بود لای گوشتمش قالب کردم آ اوه کاسب شدی یا نه امروز همه 3 کیلو رو برد الان می زنگ میزنم میگم بازم آوردی شاید اصلا بتونم راضیش کنم بگم به جای گوسپند و گوساله فقط شوتور مرغ ببره میگه کبابش خیلی خوشمزه است آره شنیدم این هم شوتور مرغ افتاده اطرافه فقط شنیدی یکی رو قربونی کن ببین چه مزه‌ایه حالا ما پولمون به این گوشتا نمی میرسه که ما از رحم داره شکست میشه این گوشه بعد وقتی میزنه این درون در که نشه. یه 5 6 دیگه مونده. اونا هم بگیریم اینجا کنیم بره دیگه هیچ دم من و منو رفتم. کاری ندارید؟ صبر قندی، پول گوشت رو میدی. بفرمایید. اینا از تو ماشین مردم میپای که از مغازه میاد بیرون. راست درمت. خداحافظ. تو همونی که دیدیمش. آره، آره تو برو که من سفارش دادم اون بگیر ببر بده تو یخسر رستوران احتشام این نذوش اگه اینا چیه چی من میذاره بیفته بابا احتشام دیگه حله دیگه مال خودمونه واسه کار دارم <تصفح> <تصفح> <تصفح> می می‌بنده میره یه تاکسی می‌گیره اون میره ایرج رو از تو آینه ی ماشینش میبینیم که داره به سمت مزرعه شوترمغ میره و حالا چند شوترمغ رو می‌بینید ایرج به سمت دایی که در حال کار کردن میاد سلام قربان. سلام فرمایش من, من با صاحب اینجا کار دارم مرده خدا رحمتش کنه یعنی الان صاحب اینجا شما این حالا فرد بفرد من هستم چی کار داره من هیچ. من یه سلامتی میخوام شما گره عبروتونو باز کنی من نوکر شما هوشی میاد چی شده جراقو بفرست سلام قربان سلام از بس من با صابی اینجا کار دارم در خدمت هستم بفرما یعنی صابی اینجا شما این در هستم خدمت از شما تشکر در خدمت هستم و ایرش تو از میشکان نشستم ایرج میکشه متاسفانه برای کار من خیلی کمه البته من خیلی زیاد بودم خب باعث شد که اگر من برای بیارم میتونی کنی اه اه بله بله البته من الان روی پروژه‌ای دارم کار میکنم که شطر توی جامعه مصبر سور باشن البته گوشت شطر مقام یه جوری مهربونی و این چیزا بهشون واکسن زدی؟ واکسن که بله یعنی آمپول دارم بهش میذارم البته تاثیرش هنوز تست نکردم ولی خب متاسفانه چطور مغامع عقیم شدن البته خب این عقیم شدنش ترتی به با اون باکسنا و اینا نداره ببین من این کار کاری ندارم من میخوام کبابی بزنم که گوشت کبابم میخوام می فقط از چتومق باشه چون خیلی باحال کردن میخوام چتومقامو از تو تامین کنم من به چتومق میرسونم تو اونا رو فراهم می‌کنی از اون انصاره مهربونی یکم بهش میزنی که یکم لذیذتر خوشمزه خوشمزه‌تر بشن اما یه نکته شما هر چیزی رو قبول می‌کنی زیادا لازم نیست کسی از این رابطه ما سر در بیاره این به خاطر اصاله مهربونی اینا آره آره نمیتونیم دهن مردم ببندیم حرفی خرفی در بیاره برد چویل سر نه نه در خمی بزرگ میرن یا میگه اونخ اومدی ایرانشان برد از این در باید دیگه بعد در بگن ایرانشان از نغمه نگرفته تو وقتی بمبایش هر لحظه با یکی حرف میزنه. نغمه جان چطوری؟ نغمه، سریع همه طلایات رو جمع کن یه گوشه بذار لازمه تو علوتورش گوش کن. ببین اگه میخواد تو این کار جدید من با شریک بشی سریع برو تمام طلای نگار رو جمع کن. علو احتشام چطوری؟ خوبی؟ ببین وای مسکنی که قرهود برام بدی الان لازمه اش دارم. محفطهی دانشگاه آلاله خانم. صد بار میگم بگید نه باز کار میکنه. اینقدر ساکن تا جونت دردی ای بابا چرا آخه اینقدر از من متنفری به خاطر اینکه اینجوری دنبال من رافت دادی داری آبروی منو میبری و توقع داری که جوابه بله بهت بدم آها بس میخواید بگید نه باشه حاله که اینجوریه فقط یه ای رو خدمتون عرض کنم اینکه شما به اتفاق پدر با اون دونه ها شطر مرگاه بدبخت رو دارید مسموم میکنید و من اینو میدونم یعنی آدم انقدر ضعیف هیچی چی پیدا نکردی. داری تهدید میکنی؟ بابا تهدید نمی کنم میخوام یه کار بکنم که عاشقم بشی ولی نمیشی. برای اینکه آداب بشی بلد نیستی مردم بود مردای ده سال پیش. یه چیزی رو که می‌خواسته انقدر سماجت و خجی دادن تا بالاخره به دستش بیارم. ولی تو الان داری منو تهدید میکنی بابا تهدید نمی‌کنم. منم دارم سماجت می‌کنم دیگه. اه. اصلا غلط کردم. آلاله به ماشینش تکیه میده خیلی خواه الان چی گفتی؟ عرض کردم غلط کردم این که کار همیشه گیته. الان اونجا چی گفتی؟ آها راجب دونه ها <تصفح> گفتی عقیم کردن شطور مرغا؟ بله شما به اتفاق پدر گرامیتون؟ در حال مصموم کردن شطر مرغای توسط اون دونه ها حالا این که مهم نیست مهم اینه که من میدونم تو همون حرفا رو باور کردی نه؟ دفتری امون میگفت ازمایش کردن رو فهمیدن میخواستی بابات همینطور بشینه منتظر بمونه تا اون پسره مذهه رو به باد بده یعنی واقعا حقیقت داره؟ دخترشون من باید هوشی رو با شرایط سخت زندگی آشنا میکردم راستش من اصلا نمیدونستم که اون دونه ها عقیم میکنه و سمنیه. باید این حرف رو باور کنم من تو زندگی به تو و مادر خدا بیا دروغ گفتم نه حالا نمیگم فقط تو باید بدونمون برادرزاده منه بعد از مرحوم برادرم من حکم پدری گردن اون دارم باید با شرایط سخت زندگی آشنا بشه بود. عللی ناراحت میشه و میمیره. اونم میمیره تو فکر. ایداد ایداد. یعنی واقعا اون دونها عاقل نکرد و صحنه. محبت ای مزرعه شتورمورگ ای و تورج و دوي هوشی ایستدن و حرف میزنن. این تو موقعی خودت به در جدا کنه. کرد بهشون از اون دارویی که ساختی بزنن. زده اون شوتو مقطعیه که بهشون دارو زدی بده سر ببرن. دارو بدیدم. سه تا ماه تا آوردن به جوجه بکشن. میکشه. مم. دانت گیر. هوشی تو اگه همینطوری با ما رابیای اینجا رو میکنین بزرگترین مزرعه پرورشه شوتو مرغ ایران. هره. هره. ببین من فقط میخوام خداو ثابت مسابتونم. امونت امون امونش امون امونش امونش رستورانی آره هستورانی احتشام هر هست فر اضافه نماشه این صدایی دوتو مشتریه پس کی باید بگه من اگه نماشم روزه سردمی میباری بفهم کجا اون کسی که بعد آروم ثابت کنه تو اینه من بس کن بفهم کجا بازم شروع کرد بازم شروع کرد بیتونم کمکی بکنم نه خیل همیشه همید. همیشه همیشه. خوش نه، وفر نعم بابا الان ببین دیگه میخوام اینجای رستورانی نکتار اگر آقا الان خیلی خوش گذشت کباب آماده آماده آماده داریم آرون خیلی چه خبره آروم کبابو میذاره رو اگه مزاش خوب نبود هرچی خواستین سفارش بدین من یه کبابو میبره و میذاره تو بale بله اثر کرد زن لبخند زنان همین طور میخوره. الان یه سکوتی رو تجربه میکنی که تا پای گول لذتش رو فراموش نمیکنی وظیفش این میشه که تا پایان روز فقط قلق صدا داشته باشی زندگی دروخته میشه ببین خوبه اوف یه شوي بخور یه بخور اگه اینایی که گفتیم راست بود یای حق مشاوره رو میدی پول داروی که مصرف کردیم میدی اگه نیایو بدی بعد از سرود میشه همونی که بود بایی در جرد زن میتوجه به اونها لحظه به لحظه خوش میشه چه گفتم مولیزه تو دستای منه درمت کرد ایره جان من باید امشان زودتر بند خونه از مدرسه پسرام زنگ زدن گفتن درسشون ضعیف شده. هر شیشتاشون، هر شیشتاشون باحالش دیگه نمیدیسم همشون دیگه. نه رفت تو خود خدا سر خورد. اعتراض هم میدم. دفتر خدمات مشترکی. ایرج داخل اتاق میشه. خانم می اونجا نشسته. در میزنه. فقط می‌خواستن برای مشتری مشتریایی که شماره‌شون رو یادداشت کردن پیامت بره. بعد امکانش هست برای سرد یزارتو از آقایونم پیامکه بره میشه یعنی میشه تست کردیم جواب گرفتیم بله بله بله از دست شما مردم حالا شما ناراحت نشین ما تازه شروع کردیم خیلی نپاییم حالا رو مردی بعد اخلاقم تست میکنیم آزمایش میکنیم اونم خوش اخلاق شد اول مشاهیتون میشه خواهش میکنم چرا که نه پیامک فرستاده شد آقای لبخند زنم پیامکشو میبینه یه آقای دیگه این آقا پیامکشو تو اداره به همکار بغل دستیش نشون میده و اینم آخریش ریستوران احتشام احتشام در حال نوشتن تورج با تا پیامک ها رو چک میکنه ایراجم رفته تو فکر من دستم تا وزن از وحر شستموسیخ به من اینطوری نگاه نکنم مدو خونه منم که دستو خشب میرم بیرون زحمت نیست اون آهیونی که پیامک رو دریافت کرده بودن یکی یکی از ماشین پیاده میشن و به طرف رستوران هجوم میارن اونم با دور تودفی دو سه روز قبل کرده و مای زده تو سرم سیسی اصلاً چشه من نمی میرم بالا بیرونش نه خیلی هم قشاقلو یه دو. با نگاه. اینقدر مشتری زیاده که به دیوار نقش میکنن به تعدادی پیک موتوری نیازmandیم. و در آخر مرد خیلی چاقی که روی بیچر نشسته. خدای من همه دیگ همه دیک. همه دیک. چا بابا رو منقلنو چدیدی مشتری با دست پر از رستوران میان بیرون. تو مزرعه حوشی و تورش به نشانه موفقیت دست میدن. ایرج از دستگاه کارتون موجودی میگیر و از خوشحالی رو پا بند نیست و اینم نمایی از شهر بزرگ تهران در شب ایرج خسته و گفته در خونشو باز میکنه و میاد تو رو در میاره خونه رو نگاه میکنه آخه زنش رو میبینی که روی مبل خوابش برده در حالی که لیوان آب میوه تو دستشه میزشام شام آماده است یواش لیوان آب میبر و بر میدار و میذاره روی میز و روی لبه مبل میشینه و به زنش نگاه میکنه حالا ایرش در اتاق به پسرشو باز میکنه ونهم خوابه انگار از این همه تلاش پشیمونه دفتر دیگدش و برق میزنه بیست هیجده چهارده امیرعلی تو خواب یه زره جا خدای من هشت ایرش خیلی ناراحت میشه و سرت کن میده تو راج هم خسته و گفته میاتون یهو خانمشو میبینه که نشسته و از شدت انتظار انگار خول شده لگن قرمزی رو پاشه و حوله رو هی از بالا تا پایین لوله میکنه نگار تا اونو میبینه لبخن میزنه تو, تو این وقتی بیداری اجازه بدین برم و به گرم بیارم پا بشودم نیازی نیست بازم نکرده. باشه تو میره میشینه نگار بله پاتنو بشورم نمیخواد بیا بشین اینجا میخوام با طرف بزنم تورج با هرس لگنو میذاره زمین ولی کاشکی میذاشتی برم آب و داغ بیارم پاتنو بشورم بایدیه بله من باید واسه انجام بدم نگار با اینو اشاره میخواد بگه که برم بیارم پاتو بشورم و تورج ابرو بالا میندازه که نه و این کارو چند بار تکرار میکنه حوشی و امن میرن تو مزرعه نه ببینم فکر نمیکنی اینایی که دارن ازت گوش میخرن دارن ازت تو استفاده میکنن؟ چرا؟ چون دیگه به فامیلات گوشت افروشان؟ بابا عجب روی داری تو. تا دیروز که اونا رو ازت می خریدن به بودن. الان که سر و اینا پیدا شده شدن اخ تجارت، تجارت ها. بابا از بس آدم بی معرفتی هستی تجارت چیه؟ آقای امین خان به وقتش دفتر عمو. آلاله اونجاست. عمو پشت میزش با کاغذ شکلات بازی میکنه. خان بازی وارد میشه. سلام سلام بفرمایید یه نگاهی به آلاله میدازه یعنی من نمیتونم بهشش حرف بزنم اه. و یه نگاهی به دخترش میدازه یعنی پاشو برو آلاله خانم دل خورپا میشه و میره و با حرص دو میبند امین میره طرف امون سلام سلام به فرمان خواهش میکنه. اتاق امیرعلی. امیرعلی دیفتاتو نوشتی؟ بابا داشتی کیفتنو بزن. نه. خیر خب اشکال نداره. بعدم میذارم تو کیفت. ریاضی تو چی؟ ریاضی یاد کردی؟ جغرافی جغرافیا خوندی؟ نه. جغرافیا؟ نه. حالا خب اشکال نداره. سانتا فن ورزش داری آره؟ آره. پس اینم شعر ورزش. اینم بذار حالا اگه سرت چوت اینم کولات بگی. بیا پفکی بکنی. <تصفيق> شما خوبی عزیزم؟ نه دفتر عمون جوان به خوبی؟ به برازندگی؟ خب چرا؟ شما این نفر رو دوست داری؟ بعد میخواد چشاتو در بیاره رفیقت به خاطر لج و لجبازی داره رفیق سمیمیشو دست میده شما جای من خوب بودید؟ حق داریم میگم الان برم یه لیوان آب سرد برات بیارم بخوری خیلی ممنون شما برو تحتوی اون آدم ها رو در بیار برو جدا خیالتون راحت الان خوبی خوبه دایی داره تو مزرعه فرغون آهنی رو میبره امین بهش نزدیک میشه و میگه سلام دایی سلام بدون بدون دست شما در نکنه دایی آدرس این شرکای جدید جید هوشیوداری فکر اون داشته باشم چه کارشون در باز خب شدقا کار کنه اگر یه ره بده با شد خی ای خودم اینجا میگه پیاممه که چی؟ اینطور رو که کلاسش بیشتر از به من دستدع نکنه بیا آقا اون چه صفی بستن بتنجله در رستوران احتشام مردی کبا بده از در رستوران میاد بام نزدیک میشه صفحه چیه ؟ ص رستوران چی می؟ شباب شبابش هم بد زیر بدن میکنم نه و باز داخل رستوران میشه میره به طرف هاش بسخونه گداري. اهد. اینجا اینا کباب دیگه نه؟ کباب. خوشوشو تو ماعه. دفتر رستوران. من به رفیقام گفتم که اگه از اینجا دیر برم بیرون حتما زنگ می‌زنن به پلیس. گفتم که در جریان باش. ای وای خب چرا حالا می‌خوای مزه رفیقات بشین این تلفن اینجا خودت زنگ زنیم... بزن. نه خلی ممنون تلفن همراه دارم. هم صورت من دیگه موقع مجبورم همکاری شما رو بای کاغذی بگم برمن کی من من اصلا هیچ ارتباطی با کاغذی ندارم به من یه پیشنهاد کاری داد منم گفتم نه چرا؟ چون نمیخواستم به دوستم خیانت کنم برای کل ایرنش میره طرف امین نه بری کل واقعا من از آدمانی که به رفیقاشو نارو میزنن خیلی بدرمی هستم درمی دیگه ما این همینجا میخوای خوای پولدار بشی؟ چرا نخوام؟ با 10 درصد از فروش چیزی که به من میدی موافقی؟ و چی بفروشم؟ چبا؟ بده؟ به جای فضولی تو کار دیگران، به جای که بخوای به نارو بزنی، به جای که بخوای تو فرق دست و پا بزنی، گوشه شتر مغم می من میدی. من میدونم چجوری با اونها پولسازی کنم. کاری که شما دو تا بیورزه هیچ وقت نفهمین چجوری انجام بدین. دور بر ندار. بیوزگی ما از بی پولیمونه. طب مگه من پولدار بودم که میخوام شما رو پولدار کنم؟ میخوای پولدار بشی یا نه؟ گفتم که میخوام. انقدر مشکلات خونه و در زیاد میشه که ما اصلا از همین اولش مطمئنیم کارمون رونق میگیره. میتونیم شعابتون مختلف بزنید، حتی فرامندقی فکر کنید. یعنی ما اگه فرامندقی فکر کنیم در رابطه با شوتر مرغ درست میشه؟ برا من مهم نیست. برا من تنها چیزی که مهمی اینه که خونواده‌ها فکر کنم با کباب سالم و درستی که بهشون میدیم، خوشبختی و خوشحالی به خونوادهاشون برمیگردهن. آه یعنی میخوای بهشون دروغ بگی؟ پسر جون اگه اینجا بسته بشه فقط پرسنلی اینجا نیستن که بیکار میشن اون آقووشه شما هم بیکار میشه اون مزرعه پروازشم تو مغ تعطیل میشه اصلا اینا رو هم کنار تو به مراد دلت نمیرستی یعنی میخواد دست بده اما ایلش دست نمیده انگشتشو برمیگردونه بی‌روحتی قاضی رو دور زدی؟ من اگه قاضی رو تعویل میگیرم صرفا به خاطر دخترشه. بشه اینجا کاغذی رو؟ کاغذی رو میخوام چیکار؟ کار؟ دختره رو بیار اینجا با کهوی که بهش میدم سریع برلال رو ازش میگیری بی خیال اه، این جادویه که من کش کردم از این کمترین کاری که من برای فیغم میتونم انجام بدن بیارش اینجا بلاخره بلند میشن و دست میدن سیده این قدم های آلاله تو مقابطی دانشگاه سنگه مبایی میشن سلام کی من؟ کجا بیا درست صحبت کنید آقای محترم اتفاقا منم با شما رو ببینم یه واقعیت خیلی مهمی رو در مورد مزرعه بعد بهتون بگم که بیخود قضاوت نکنید آدرس رو برام بفرستید با هرس موبیلش قطع میکنه رستورانی احتیشان این صدای پای آلاله است امینم اونجا هست خودشه بورو برو برگش ماما بود بودو این ببین جواب نده چی ما امتحان کردیم جواب دادی بدا برو برو برو, برو, برو؟ این جواب ده من نوچه هتونم سندش رو بزن جواب میگه خوبا برو برو برو برو تو کارش برو برو امین میاد پیشواز آناله سلام سلام خب بگو اه. میتونم ازتون خواهش کنم که بشین؟ نه الانه مکسی میکنه و تصمیم میگیره و اون میشینه مم. امینم میشینه از چرا گفتید نه اگه الان من اینجا فقط به خاطر اینه که تو دوست اوشی هستی من به خاطر آوردن اون دونا به مزرعه واقعا نمیتونم خودمون ببخشم بابا هم میگه ازشون بیخبر بوده اونا رو ورده او بود که مثلا به زیاد جمعیت کمک کنه. ولی خب برعکس شد. الانم اینجا فقط به خاطر اینکه از ولت در بیاد. نه چیز دیگه ای. خب تشریف میوردید آش آغوشی؟ گوشی انوز باورم نداره. ولی اگه بخوام میتونم بیا. نه نه نه من اصلا منظورم این نبود. من میخواستم بگم چه بات حرف داره. سلام هم. سلام. قشنگ میاد. دو پرس کباب لطفا. من کی گفتم کباب میخوام؟ ایرج میاد به شما یه بار حالا امتحان کنید حیف نیز جایی که این همه آدم برای که آباش صرف میکشن خانوم محترمی مثل شما یه بار امتحان نکنه آلاله راضی میشه آخ آخ, آخ. اما از ماشین آخرین سیستم شستی بلندش پیاده میشه و کتش به نشانه جنگ مرتب میکنه و نگاهی میندازه برسید و حالا داخل رستوران بفرمایید ایرج خوشگوی کبابو میذاره رو میز و میشته و اونا رو نگاه میکنه. آلله با بیمیلی شروع میکنه به خوردن. شما بفرمایید. اه اینا گوشت همون شطرمرگایی که خودمون پرورش میدیم چه بامزه خیلی لزیزه ممنون از پیشنهادتون این آقا امین از دوستان و شورکای ما هستن بله در تأمین گوش شطرمرگایی این رستوران با ما همکاری میکنن جوان با استعداد خوشاتیه یه واقع یعنی آرزوی هر دختر ایرانیه که آقا امین همسر آیندهش باشه من بعضی وقتا ای کاش مدیر ما یک دختری ای داشت در سنو سالال ها امین غی میشد دامادشون و کاش که من توی این سنا ساللا مدیر بودم من دختری داشتم در سنوال ایشون. من میتونم از شما یه خواهشی داشته باشم خواهش میکنم. بله کم کم اثر کرد آلاله دست به چانه با رضایت به امین نگاه میکنه. میتونم ازتون... واستاگرامی کنم. پدر اما بزرگ افتوخرا. اگه بزرگتر و پدرش منم نه. امین بیچاره همینطور هاجواچ میمونه. امین ماجو صداره حد از در رستوران میاد بیرون. آهی میکشه سالانه سالانه از پله ها میاد پایین. اما تو رستوران به جای امین و در حال خوردن کباب نخوره خورد خورد کجا میری؟ باقا ما این کباب رو مردا که امتحان نکردیم حالا الان امتحان میکنیم دیگه این خودش مثل گوزیلاست این کباب رو بخوره بشه مثل اون یارو فیلم هشی دراکولایه بشه اون چی الان میبینیم چی میشه تو رزا بیا طوری شده غربان سلام اما این گار داره خفه میشه ولی لفت خیزنه اون میگه تو این کبابتون چی ریختی؟ یک مقدار احساس مهربونی من نمیخوام مهربون عزیزم میخوام قربون اطورم اگه امکان داری یه مقدار رایت کنیم من بررسی میکنم احتمالا مقدار دوز اشتا شده سود بیا یا آلاله در حالی که چنگالش روی بوش خواب میکشی با خوشحال قرق رویه است حسرت و فکر پیشنهاده ازدواجه امینه ها, ها. دختر گلن باشو بری موش دختر. دختر براش دوش پسونی رسولان داده با موبایش رو نمیزنی صدای خانم رو آیفون سلام آقای عزیزی خدا هستم من آگاه هستم تبریک میگم خانم مطبی صی آگاهین؟ منظورم اینه که فامیلی آگاهه هست خوبیم خیلی خوبه که دو من مدیر مدرسه فسر آقا ایش برای نیست چیجومانی که میمونه از آدم دارم خد خوبیم خانم آقا عصبی میکنم کنم من بجنایی بودم قبلش چه خوبی آقای محترم پسر زده دندون پسر مردم خورد کرده پسر من؟ پسر من که اخلاقا نداره به پدرش کشیده پسر خیلی آرومیه، مطینه مگه امیرعلی عزیزی پسر شما نیست؟ بله خب اخلاقش تقییب کرده آخه امکان نداره امیرعلی خیلی پسر آرومیه ساکت عین خودمه قطعا به شما رفته وگرنه من مادرشون دیدم ببینید آقا من مطمئنم این بچه از دیر نظر مادرش خارج شده خانم آقا من یه تقاضایی از شما داشتم اگر امکانداری یک جلسه ای در رستوران ما ما با هم داشته باشیم در مورد این موضوع صحبت کنیم خدا نگه دارم آقا خدا نگه دارم موبایلو بیذاری تو جیبش. یه دیگه که های داری بابا داری چیکار میکنی؟ بازی. مگه درس نداری؟ دارم ولی به مامان مشورت کردم گفت ای بی نداره آقا. چراش میاد کنار پسرش میشینه میگی؟ مامان چند وقتی به خیلی چیزا کاری نداره. من اینکه دارم نه از من زندگیمو ریخته هم تو داری حال میکنی پاشو. پاشو برو سر درست بازی تعطیل. و با اگه از بازی خبری نباشه؟ چش. چش. آه می میمونه با یه عالم درس. شب ایراج را نقمه روبروی ما نشستن فیلم تماشا میکنن ناخمه نقمه خوشحال سیپوس میکنه. ولی ایراج انگار زیاد خوشحال نیست کلافه صحیح آه میکشه. کشه زندگی کندشتی برا بچه دارم که نگرنش داشت یا سعبار من دارتم بدم کنیم یا من سعبارم خیلی پر خیلی فقط نه بله. از این شرایطی که ما الان توشیم راضی هستی؟ بله آقا. ب... دارم دو خیلی دوستانه با صحبت میکنم لازم نیست اینطوری جواب بدی. نظر من نظر شماست آقا. این چه کاریه کجا معلوم هرچی که من میگم درست باشه یا غلط باشه. هرچی شما بگید آقا. Wurد. از این من... که داشتی، امکانش هست به من دعوا کنی؟ وا خدا منو مرک بده اگه بخوام از گل نازکتر به شما بگم. فنا نو شما سیب بخورین من میرم واسهتون آب هویج تازه بگیرم نمیخواد نمیخواد برو مگه اینجا آب میوه فروشی هستا با آب هویج تازه آب, آب سیب تازه پرتقال تازه برو میگن دعوا کن میخایید برید توو مراقبت خود بیاد بره خبرم منم بروم حال خبر عصبین نمیشی نم. آب نرم ندارینگه برو ما چند ساعت اینجا وسط دید خسته نشودی تورش روی مبنش هست و لگم به دسته من اگه نخوام تو پاهمو بشوری چی؟ تا صبح بایه آقا اگه ببخشی داربتی حرف اونجا من واقع مذارت میخوام دستور بدم ببخشی این کارو نکنی چی؟ انجام وضعی پس آقا یعنی بایدیه بایدی رستورانی، احتشام خانم خوش روی میاد طرفی تورجو میگه؟ سلام آقا سلام علیکم بفرمین من کباب میخوام کوبیده یا برگ از اونایی که میگن میدین آدم خوش اخلاق میشن بدرد به درد شما نمیخوره شما که خیلی خوش نیست <تصفح> برای خودم نمیخوام برای شوهرم میخوام ببینید این کباب هنوز رو آقای اون تست نشده تازه یه نفر خورده اونم بگیر نگیر داره مرمونیست جواب بده نده برای چی میخوامی؟ دست بزنده. شوهرتون؟ بی کرده. بده دسته سه چهار نفر حسابی. عدبش کنن بفرنه به نیدستی چپ جب مردهی پیرام شنو. هر خود باشه من یه دونه براتون تو میزنم. میتونم با مدیر رستوران صحبت کنم؟ میتونم بودین. دفتره مدیر. کارتشو روی میز میزنه. یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق خونوگاه هستن. به به. راستش ما یه محفلی داریم که من دوست دارم تو اون محفل از مهمونامون با کبابای شما ازشون پذیرایی کنم. به به. اون وقت چی؟ راستش ما هر کاری کردیم که آمار طلاق رو بیاریم پایین نشد. اون وقت میخوام خانم مدیر به ما چه ارتباطی داره؟ خب همین دیگه. ببینید من یه ایده دارم. ما مهمونا رو دعوت میکنیم تو اون محفل. از کبابای شما با اون پذیرایی می کنیم. بعد فکر کنید چی میشه؟ خانواده هایی که اومدن تو مهمونی همه عاشق هم میشن. گرفت داد گرفت. شما می رئیس بشین. شما خیلی باوش هستین. ایراد کارتون میذاری تو جیبیشو. چند لحظه. صبح خیرتون راحت باشه. شما رأی آوردین. خیلی ممنون. واسه برات هم جای ممنون. خدا نکنه. سلامت. چی میخواست؟ مدیر میخواد مجددا رأی بیاره گفتم شما رأی آوردین. گوش بدیم مردم بخورن که سو استفاده کنن؟ قرار ما این بود؟ ایرش میره پشت میزش میشینه. تورش میره میشینه. تورش پول شده از سخت دیگه. قرارمون این نبود. قرار بود یه کاری بکنی اخلاق زنمون اصلاح بشه. الان دارم می‌بینم منو تو از اون دوتا تا بدترین. ایرج ما الان زن نداریم دوتا ربات داریم که میشورن میروبن میسابن کنیزی میکنن آب میوه و شیرسل بخورده من رو تو میدن ایرج من دیگه حالم از هرچی بله عزیزم و بله گلم به هم میخوره من زنم و میخوام ایرج. رفتی گفتی دوزه تا داروها رو ببرم بالاتر که اون دوتا تا آخر ما برده ما باشن ایرج زنم ایرج زنم خیر خوب تیگه گفتی زنم من در نقمه میخوام دیگه میگه دیگه بود با خرک صحبت نمی‌کنی که سه بار ما می‌خوام شب از نمای نزدیک امیرعلی رو می‌بینیم که روبروی ما به پهلو خوابیده از استای اتاق ایرج آهسته بهش نزدیک میشه و کنارش دراز میکشه و به یاد سر دندون پسر معروفو خلو کرده دندون پسر کرده اخلاقش تعریف کرده ایرج ما زن نداریم تو تا داریم که که میشورن میون و میصابن کاری زن کنن آبی روشی رسن به منو من مطمئنم بچه مادرش من مطمئنم این بچه از نظر مادرش خارش شده ایرج سنم باز امین گوشی اونجا. تو میدونی این آقای رج با گوشت این شطورم آقای چیکار داره میکنه؟ کار بری نمیکنه. پس کلا از اوضاع زنای شریش خبری نداری. برای که بعد شدی که اینا همش کارهای توه این تذریقایی که انجام دادی. چرا واقعا. برای اینکه عقیم شدم. برای اینکه عشقیادشون رفته برای اینکه شدن لگه ای و پس یه سری عشق ماشینی درست کردی نه ببین همین آلاله رو میبینیم آلاله خانم آلاله خانم اگه منو میخواد بعد خودمو بخواد خود خود خود, خود امینو تو تا حالا عاشق شدی؟ ایره میاد سلام آقوشی سلام سلام سلام, سلام. کسی یه خواهشی دارم. اگه امکان داره این ها رو دیگه متوقف کن. یعنی قرارداد بی قرارداد؟ نه. نه. دردم سر جاشه. من دیگه عشق مکانیکی نمی‌خوام. دلم برا دو فریادای نعره تنگ شده. من الان نیت یکمویی هستش که اصلا تزریق نمی‌کنم. نه. آره. نگو. پیشنهاد بیزینس جدید دارم. مثلا پوشاک با چرم و پرش و فوم. صادرات عالیه او. هستی؟ حوشی و ایرج دست میدن شب اوه چه خبری تورج متکر سپر خودش کرده و نگار هرچی در به دستش میاد پرس میکنه به طرف اون تورج میدوه و میره ای نگار اینگار لبخن میزن و خوشحاله چه اصلا میخوری؟ دنه میخورم میخورم دنه برو تو درست کن ببینم بودو. بودو. امیرالی امیرالی یه روز کشده و با امسکش بازی میکنه بیر. تا سه دیگه دیگه بر میداری اون اتاقا مثل روز اولش میکنی فهمیدی؟ بایدو ببینم چیچه مادر میره و امیرالی از روی تخت پره میره تو اتاقش رو رتب کنه ایراج رو از در اپارتمان پرس می‌کنم بیرون و در محکم میبندن باز میشه و یه گله مشمای زبال پرت میشه به طرفش امین پشت در خونه احتجام با یه دسته گل ایستاده تا حالا شده یادتون بره خورشید هست؟ تا حالا شده وقتی تا به از دست خورشید به سایه پناه میبرین به این فکر بیفتین که اگه خورشید نباشه چی میشه؟ میگن اگه مدت زیادی به یه نورفکن نگاه کنین دیگه اون نورفکن رو نمیبینید میگن اگه یه چیزی خیلی در دستتون باشه بهش عادت میکنی زندگی زن هم عین نور خورشیده تا حالا شده به این فکر کنید که وقتی میان خواستگاری همسر آیندتون این شما هستین که از اون درخواسته ازدواج میکنید این شمایی که از همسر آیندتون میخواین که به شما بگه بله پس چرا وقتی مدتی از زندگیتون میگذره فراموش میکنید که یکی هست که شما رو دوست داره یکی هست که از بس که هست دیده نمیشه بیاین واسه یه بار دیگه به اطرافمون نگاه کنیم. بیاندیشیم که اگه اینی که هست دیگه نباشه چی میشه. بیام به خورشیدی که کنار اون زندگیمون رو روشن میکنه دوباره نگاه کنیم. یه بار دیگه. از نو. خوشبیدان آللأس که روبروی ما ایستاده با رضایت و لبخند منتظره. واقعا چرا وقتی مدتی از زندگی مشترکمون میگذره یادمون میره که یکی هست که ما رو دوست داره یکی هست که از بس که هست دیده نمیشه امیدوارم از شنیدن فیلم شطور به کارگردانی علیه اصداللهی لذت برده باشید اجازه بدیم همکارانم رو خدمتتون معرفی کنم صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده فرشاد آزرنیه و من فریبا تاهری راوی و نویسنده سربلند و پیروز باشید و خداییارو نگه نگهدارتون <تصفيق>